رادیو کوچه ده تهران بودگاه مهراباد 1338 هجری شمسی بالاخره صدای جیغ کشیده شدن چرخهای تیاره خط سیاه بزرگی کشید و روزها و شبهای قربت نشینیم و پایانی شد برای سرآغاز یک زندگی دیگر آنگاه که آدمی بعد از سالیان دراز پایش خاک وطن را لمس می کند. همانند تولد یک نوزاد همانقدر زیبا و به طبعش همانقدر غریب است شروع این زندگی شاید مدرن تر آمیخته ای از فرنگ و سنت کاشته شده در قلبم که اگر به رسم توضیح دهم می شود استفاده آفتابه در موال های فرنگی در آهنی تیاره که باز میشه بوی تهران بوی نای خاک و بارون اندکی که باریده مشامم رو پر میکنه از زمانی که اسم سفر فرنگو کرده بودم تا به الان زمان زیادی نمی‌گذره اما این کار با اعرابه زمان سفر کردم این میگم با با زمان سفر کردم شاید کمی دیر واقعی به نظر بیاد اما آدم وقتی پا به وطنش بذاره همه چیز رنگ واقعی میگیره. شبیه آدمای اینجا. مهرآبادم هم به همون بزرگیه که نشریه فرنگی تیر کرده بود. اگه میخواهید اصالت و شور و زندگی را ببینید به تهران سفر کنید. مهرآباد ایرانو از دست ندید. کوچ شاذه مرداد 1340 هجري جمعه شد و ساعت 7 صبح و من از وقتی که تصمیم گرفتم از خارجه از اون وطن کنم به یاد نمیارم که ساعت کوک شده نه صبح خودش سر وقت زنگیش شده باشه و اینم یکی از اون خیلی چیزایی که فرق گذاشته بین ممالک خارجه و این مملکت اسم این فرقا رسم و رسوماته و برای من این فرقا انقدر جذاب بوده و هست که اگه یه روزی دوباره از ممالک دیگه به پیشنهاد آنچنانی بدن قبول نخواهم کرد. رسم ها میتونن ساده اما عمیق باشن و از نظر ما شاید خنددار یا بعضا بیمعنی علایه حال رسمی که چندین سال تو خونه آقا جون بنده آمیر حسن استالله ناجی و که همیشه دوستاش اسمشو امروزگار صدا بزنن و هیچکی جز من اونو به این اسم صدا نزد با بوده و منم به اجبار اونو پذیرفتم اینه که امروزگار به خاطر عهدی که با مولوک و سلطنه عزیز جون بنده داشت هر صبح جمعه رو با شنیدن صدای داریوش رفیعی آغاز میکرد و بنده هم از اجبارات مجبور به شنیدن اون می شدم. از خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون صدای داریوش خان همراه با زیر صدای امیرز حسن شده حلقه و وصله به گردنم شایدن نزدیکتر از رگ گردن که اینطوری منو زودتر از صدای زنگ ساعت از خواب بیدار می کنه. شب بغولستان تن ها منتظرت بودن باده ناکامی در هجرت و پیمودن منتظرت بودم منتظرت بودن, منتظرت بودن. این کار هر جمعه رأس ساعت 7 صبح بلا استثنا صورت می گرفت و منم هر جمعه رأس ساعت هفت صبح با همون چشای بسته تو دل خودم با داریوش خان و آمیرس حسن بیتار را تکرار میکردم و فکر میکردم که آمیرس حسن اون لحظه تو اتاقش به چی فکر میکنه؟ یا چرا هر جمعه رأس ساعت هفته صبح باید این کار انجام بده؟ اما این بار شاید ده دقیقه هم از هماوایی آقا جون و آهنگ مربوطه نکزشته بود که صدای خانومی همسایه دیوار به دیوارمون با پیش درآمد صدای تیک انداختنا و حاضر جوابیه ی تلا درهم شد و خواب و بلکل از چشمامون رو بود. و باز جمعه شد و ساعت هفته صبح. یارب نظرتو برنگرد. اینقدری که رده چشای بعضی تو خون زندگی بقیه است، اگه دنبال شوهر داری و زندگیشون بود الان شوهرشون جلد خون زندگیشون میشد، نه جاگیره غربت که هفته یه بار مثل سایه بیاد و بره واه واه می بینی تو رو خدا؟ اینا همش حرف مفته خوبه یکی اینا رو بگه که هی بچهشون انداخته باشه که شوهرش کاش کاش ونگ ونگش بمون و راه و بیراه بره کاشون چشمای طلا دنبال آدمای زپرتی نیست بسم الله کیه اول صوبی؟ منم خانم منم کیه؟ ای بابا شوخیتون گل کرده سر صوبی؟ باز راه کدوم بند خدایی افتاده به کوچه ما و غریبه امیر ارسلان؟ بیا ببین کدوم غریبی اومده دم در سلام خانم سلام آقا پسر کیه؟ هشکی هشکی <تصفح> هم خوبه مراقب خودت باش هشکی بله پسر جون چی میخوای؟ من؟ فکر کنم اشتبه اومدم نه نه نه درست اومدم اینجا کوچه شازده است دیگه آخه اینگاری فقط غریب نیست را هم نداره تو صبح خروس اومدی در خونه مردم میپرسی اینجا کوچه شازده است بله عزیزم آره اینجا کوچه شازده است خب بعدش ببخشید این خانوم که الان از اینجا رد شدن میشناسین؟ سرت پاده آجور خورده؟ چیز خورت کردن؟ بیا تو هم میرسلم تا به مخش از دورم معلومه نبه امام بود من سالمم کمی کمیدید شدم یهو من قبلنم اینجا آمده بودم خونه خسروینا ولی آخه خونهشون همین بودا شما نمیدونین کجا؟ او پس بگو رفیق خسروی اونم مثل توی تختش کم بود. باباش که مرد با خانواده از شم کردن رفتن لباسون. امیدوارم اونجا سر عقل بیاد. اه خدا بیمارز باباشو. بالاخره چطوری که در خونه همه میخوابه. این بار آمد در خونه شما خوابید. اد برخشید. منظوران خونه خسروینا بود. پسر جون مثل اینکه که گوش توس پیشیده داره. چه خبته کردیم اول سویگی این پسر افتادیم؟ ای بابا؟ تفلی مادرش معلوم نیست چی کشیده این بچه شده انقدر عقلش تاب داره بگم اونم اکه کردیم نوکرتم اینجاست که میگن خدا گرز حکمت ببندد دری زرحمت گوشایی داره دیگری حالا در خونه این خانم آقاها رو بستی رو ما ولی از تو که پنهون نیست باز شدی شدیم انگار اون بچه رو بسه گیج میزنه ها؟ آی پسه چی میخواییم وقت سر جلو در خونه مردم پیچ پیچ میکنی با خوده از چیز زدی به در خونه فخر و زمان اوه اوه فخر و زمان چه بهشم میاد اوی پسر با تو بودم آ. با من بودین خانم؟ نه پا با کفترهای توقی بودم حواست پرته آشقی من اسمم هیدره هیدر چی؟ اومده بودم اینجا دنبال رفیقم که بهم گفتن از اینجا رفتن ولی خانوم عاشق شدم عاشق جلل خاله همین خولودی بود هر کم داشتم اول صبح قاتیخوری کننده معلوم نیست چی میگه همونجا بمون بیام پایین ببینم حرف حسابت چیه چه تو این سن که نباس لب خمره تر کنه اونم صبح به این زودی عاشق شدی همینجوری نغافه از اون بالا حواس هم بود چشم فقه رو زمان بر نداشتی تا رفت تو خونش بعدش هم که این او دیوونه ها به زل زدن به در خونش رو پچ پچ کردن حجب دور زمونه ای شده لا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 مامان داد میاد نمیتونم بخوابم داد نی جیقه طلا داره جیغ میزنه هم همون خوابم نمیاد مم. بونه خوبیه برای نخوابیدن خدا هر روز و شب یه چی برات جور میکنه. لب تو چیه؟ کاش زورا وقتی که گلون پاره میکردم اقدر گوشات تیز بود مسلحتی میشنفی تو؟ لب تو خمره هیچی بیگی بخواب هنو وقت داری کلی صبح تازه نمیاد چه بشته ها خب تو خونه طلا تا لنگ زور ورش مونس میخوابی خوب اقبالان با تون به خونمون جن داره که توش وای نمیسی جن داره یعنی چی؟ وای وای نویلش کن دیگه بهت نمیگه اصلا بیو یه گولی بهت بده گول ماشه ها مثل هر شب که به هم قول میدی بخوابی، ولی یه ها و صبح سر از خونه طلا در میاری قول به دقیقت نری خونه مردم هی باشه قول اگه من نره چون میترسه بعد تو فسقلی بری یعنی نمیترسه دیگه چه خوب حواست به دلش هست که نترسه یادت نره ها قول دادی یا آله آله قول ماما شب شدیجه برم کجو کلی صابی حسین وای خاک تو سر تو خوب اه ماما خیص شده من نمیدونم خودش خیص شده ها میدونم میدونم خواد بگی کلاغو ریخته تو رخت خوابت وای وای وای تو چکش پتوش ماشالله تو شاشیدن دست و دل باز هستی. در بیار. در بیار ایلو با ساعت شد. بدو. بدو تو حیات تا بیا. بدو. ماما یاسی جن داری چی؟ جن؟ اینا تو جن خونه دیگه. جن شاشو. ای بابا. ای بابا. میبینی تو رو خدا؟ این پسره همه تختاش کمه تلا که باز میکنه کوچه میشه قهوه خونه سوزوندی اون زنگو آی خانوما آقایون کسی تو این کوچه نیست من ندستی خانم محترم نجات بده خانوم اصلا شما چه از جونه من میخواین عجبا رو نیست که ماشاءالله سنگ پای غزمینه چی میخوای پسر از تو این کوچه رو گذاشتی رو سرت؟ وح, وح, وح کافیه ردی یه مرد بیاد تو کوچه تلا خانوم هم حاضره خوبه من رود روت باستانم اینجوری لغوز میخونی آباجی خانوم قدیما یه شعله نامی بود که به مادر عرش میگفت مادر فولاد زره فکر کنم از خاطر اینکه تو رو ندیده بود امیر ارسلا دعوای زنونست خانومم تلاستیگه خودت که میشناسیش تلا خانوم مادر شور خانوم تو این کوچه کسی نیست جواب این دل منو بده؟ مردی شور دل تو ببرن که ش... مامان،, مامان مامان مامان مامان با صبح شده این حب به مامان خور بله تو دیگه از پشت پنجره این چیک نکن همین شب اول صبح مثل بازار مسکر اینجا به حسمت تلفن کرده زود باش بیا میگه کار واجب داره خیلی خوب الان میام شانس وردی پسر جون بعدا تو توی کارتا تو در میارم مونس به آقا جونت راپورت علمشنگه کچه رو که ندادی نه من اصلا دهنم لقه مامان خیالت راحت تازه گفتم نه جیغای حسینه تأثیدم عصبانی بشه یادش بره که بعد هم شعر فرنگی مامان تلا بهش بگو من چقدر بچه خوبی بودم و تو خونه کمکت کردم باشه آره یکی تو خوبی یکی اون ورژک حسین خیلی خوب خیلی خوب میگن همیشه پای یه زن در میونه. اما اگه مردی نباشه، هیچ زنی قدم از قدم بر نمیداره. این یه قانون نانوشته است. مثل همون قوانینی که توی منزل مارایجه. از صدای تیک تیک ساعت دیواریمون بگیر تا صدای سوزنی کشیده شده روی گرامافون امروزگا. آقا جون. چه خبر اینجا؟ اومدنی همه جا آروم و ساکت بود ببینم تو گفتی اسمت هیشگیه؟ بعیده یه هیشکی بتونه اینجوری همه را بندازه به جونه هم یا امامزاد داوود. فکر نکنم اینجا به کمکت بیادونی که صداش میکنی بگو ببینم تو مشکلت چیه؟ اه. اه. راستش؟ راستش این دوست سفر کردن به من گفته بود تو کوچه تون یه خونه واسه اجاره است خدا کنه واسه اولین بار تو زندگیش راست گفته باشه ای بابا از قدیم گفتن نانش دهید و از ایمانش نپرسید آره همون خونه سمت راستیه سر کوچه است حالا بهتره تو بیشتر از این اینجا رو به هم نریختی بری هه؟ چی گفت اصلا؟ بله اتفاقا اخیرا کتابی خوندم که توش نوشته بود ابتدای کوی که جلوس کردی هم ساده را ببینی همسایه را یعنی خلاصش این میشه که اول همسایه رو ببین و بعد خونه رو بگیر حالا گیرم که اینو تو کتاب نوشته بود اما هر چی که اون تو می نویسن که درست نیست اونا میتونن اشتباه باشن خب دیگه روزت بخیر خیر هیش اه... گمونم داد میزدی که اسمت هیدره خب روزت بخیر خیر هیدر سعی کن سالم برسی خونه بله خانوم اسم من هیدره هیدره ای کجا رفتین خانوم؟ جلل خالق اینجا چرا یه همه میرن؟ این آقاجونم خیلی حالیشه ها. همیشه حرفهایی که بهم زده درست تذاب دار اومده. ای ای ای ای. همین دیشب بهم گفت جای این همه کتاب خوندن برو حرف زدن یاد بگیر. آخه یکی نیست به آقام بگه کجا برم حرف زدن یاد بگیرم. جمعه از روز عذل برای استراحت ساخته شده بودن. تا اینکه آدم اومد و این قانون و کرد. مثل اومدن همین مهمون ناخونده به کوچه و هیدر حکم نقص کننده ی آرامش رو برای من داره این بار باید بگم ساعت نوه صبح و آقا جون و خانومی و امیر ارسلان و طلا و مونس و گلنساب و فخر و زمان و هیدر شدن یه تنگ که نظرن لذت خواب صبح و با دل خوش به سر انجام برم. شب به گلستانتن منتظرت بودم باده ناکامی در هجد و پیل منتظرت بودم منتظرت بودم. آن شب جان فرسا و من بی تو نیاسودم سودم وقت که شدم پیرزغم آن شب و فرسودم منتظرت بودم منتظرت بودم سهرگ نوجاچوپری خان دزنام آمدی از رو قم ها و سرو می زنی قم دور از دل بزودم منتظرت بودم منتظرت بودم مفتونه در آن اشق جنون مفتون تو بودن اکنون از دن من بشنو تو سرو منتظرت بودن منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم منتظرت بودم.